میقدر انب تو که ان دنیا و حال ها و زواال ها بتقال ها و ذبط طورول کل امسال تعع بربه من برای تو از دنیا و حالات دنیا... و زوال و تغییر دنیا و ارز می به اینکه انتقال و نقل از دنیا برایتون مسئله هایی زدن و مسئله هایی تا عبرت بگیری و درک کنی حقیقت دنیا را درک کنی یه مسئله رو اینجا خود حضرت می زنی. میفرمود انما مثل من خبر الدنیا کسی که دنیا را میشناسد و او را اختبار کرده و او رو امتحانو تجربه کرده و دنیا رو شناخته مثل من خبر الدنیا که مثل قوم سفر مثل یک قوم مسافری که نبا به منزلن جدیبا وارد شده باشند این مسافرین در یک منزل سختی که به تعبیر بنده نه پیدا میشه نه علف پیدا میشه نه نو پیدا میشه یک جای قحتی زده و سخت فا منزلا منزلن خصیبا به کسی خبر میده سر مثلا پنی فرسخی یک منزل خیلی خوبه خوش آب و هوا و درخت و از زندگی از نظر قذاب و نام آب و نام جو خوب پیدا میشه فعن موزال که منزل اونا را می افتن دو مرتبه با اینکه که خیلی هم به تعبیر من خستن راه زیادم رفتن از نفسم افتادن ولی چاره ندارند را می برای رسیدن به اون منزل و بعد از زحمت ها و مشقت ها به اون منزل ولی وقتی رسیدن آیا این زحمت هایی که کشیدن برای اونها زحمت حساب میشه؟ آیا رنج هایی که بردن برای اونها رنج حساب میشه؟ نه این راحته برای اونها چون برای یک مقصد عالی این فعالیت رو کرده بودن و برای رسیدن به یک کمال این کوشش رو کرده بودن برای اونها سختی سفر خیلی راحته زحمت راه خیلی راحت میشه زیرا به مقصدشون رسیدن این مال این بسته و مثلو مسئله کسانی که من اقا تر را به ها کسی که به دنیا مغروره و گول این دنیا رو خورده مسئله است که توی یک با منزلی وارد شده اونجا آب پیدا میشه نور پیدا میشه درخت و سایه و آب داره که بهشون میگن اینجا از اینجا بره یه منزل دیگه زحمت میکشن ولی میرن میرسن به منزل خیلی سختی میرن میرسن به جایی که آب نیست نیم نیست خسته به تعبیر بنده خسته و مرده و از را رسیده هیچی هم پیدا نمیشه. مسئله کسی که عاشق دنیاست مثل مسئله این دسته دوبونه مسئله کسی که طالب آخرت مسئله دسته اوله من برای تو مسئله زدم تو خودت رو بیازمایی ببینی اهل دنیا هستی یا اهل آخرت اهل اون جمعیتی یا اهل این روجی به دنیا اینقدر مثل داره تو روایات اینقدر مثل داره تو آیات هر کدوم ایمان یه ای رو در نظر گرفتن و یه تشبیهی کردند و یه مثلی زدن هر کدومش ناظر به یه جهاز. خود قرآن چندین مثل راجع به دنیا داره اینم وزر لهم مثل حیات دنیا که ما این من السماء فختلطا بهی نباط الارض فاسبها هشیمن تغروح الریاه و الله علی کل شیع این مقدر و مثل حیات دنیا رو بر اینا بزن آب بارون از آسمون میاد گیاه ها مرمیه به تعبیر من گل و بریو و سبزه ظاهر میشه ولی فاصلهی نمیشه که مرتبه این برگازرد میشه بادها میوزه و این دیاهای خشک پراکنده میشه این دنیا است من همینه نعمتش بقا ندارد جوانیش دوان نداره پولش بقا نداره حیاتش رو به مرگ صحتش رو به مرزه دعا اینو داره تغییر میکنه <traukani /honey> به چندین مثل در قرآن راجع به دنیاست دو مثل نوشتم که رواد... در دستم بود راجع به روایات <graungs replace the tinha -honey> انما مثل دنیا کما البحر دنیا مثل آب دریاست کلما ما شر را ازداد هل اتشان آتشو. هر هرچی بخوره که تشنگیش رفت بشه تشنگی میشه یعنی آدمی که طالب دنیاست یه روزی میشه که بگه سیر شدم سن هزار تومن، صد میلیون تومن، صد پریلینت رو من پیدا کنه روی دیگه می میشه؟ این رو میگه دیگه بستم دیگه نیمه خوام میشه؟ نه این هرچی نیره دنبالش خواستش زیادتر میشه مثل آب دریا مثل دنیا که مثل ما البهر کلما شره بالمنهول اتشان ازداد اتشان حتی یقتوله می به جایی که می کشته یه مثل مثل دنیا و که مثل رجل لهو ذراتان دنیا و آخرت مثل یه آدمیست که دوتا زن داره هر وقت این رو راضی میکنه اون راضیه هر وقت اون رو میکنه این راضیه یعنی دنیا و آخرت گول نخوری با هم جمع نمیشه اگه دیدی دنیا خیلی گرفته حسابشو بکن اگه کار دنیا خیلی رواج داره حسابشو بکن کجا کار آخرت خراب شده این مثل دنیا الگوزی و الاخره که مثل رجل لحظ در رتان این ارزو اهده ما از خطت از این دنیا که شبکه دنیا میسه توره هرکی بریسم توش میفته توش هرکی دور خودش نگه داره از این شبکه و از این تور سالم میدون این که شبکه تلتف و الان من رقب علیه ها هر کسی که رقبت کنه بره سمت این طور این طور می دیگه هر گوشش نکشی یه جای دلش به خونه بسته یه جای دلش به ماشین بسته یه جای دلش به مقام بسته یه, یه جای دلش به میز بسته هم جور می این دل دیگه برش نمیمونه که بره سمت خدا نخوا و تنابه ها از اطراف و جوانی بریختن ااف. که مثل شبکه از می و تلتف و ال منررق به فیها و تنجو من از انها. هر کسی که اعراض کنه نر سمتش از این رهایی پیدا میکنه، فلا تو ملعه ها به قلبک مواظب باش این دلت میله به دنیا نکنه که فیوقه او کفی شبکت ها که میرزه دنبال میرزه از می این دام اطراف تو و این نخهاش دستقاتو میبرد اینم تمام شده ای یکی جمعه خونام دیالا ولی شما خسته میخوام بشین ولی نشین حضرت باغر سلام الله علیه به عمربن عبدالعزیز فرمود انما دنیا سوق و من الاسواق این بازار این دنیا یه ده میان تو این بازار به تعبیر من جنس مرقوب سوددار تهیه میکنند و میرن. یه دست میان در این بازار جنس غیر مرقوب زرردار تیمی کنن و میرن خرج قوم به ما ینفه و خرجون ها ما یزره خوب خب اون وقت این دسته من قومن قد زره هون اومدن تو بازار زحمت کشیده، کار کرده، خودشو کشته ولی جنس زردار تهیه کرد. حالا میخواد بره بیرون از دنیا ملومین، ملامت زده، متأثر، حسرت زده لمو لم ياخذوا ما احب من آخره میخوان حالا برن به زندگی ابدی و اصلی ولی از این بازار چیزی که به درد اون دنیا بخوره چی هست یا نکردم ازش شود به این که و لا بعد به عمر فرمود فرمود و لا تذهبنه الى قد بارت الامن کان قبله ای عمر ابن عبدالعزیز جنسی نخری که دیگران خریدند و شکست شدند جنسی نخری که دیگران خریدند و ورشکست شدند تو حالا انتظار داری اون جنس رو تو اتره بخری تو سود ببری نه سود نمیبری. بری روایاتی که برای دنیا مثل زده ماشاءالله و, و هر کدومش هم یه جهت لطیفه یه جهتی رو در نظر گرفته به خصوص کلماته ایسا علیه السلات و السلام خیلی جالبه من گاهی به طلبه سفارش کردم کلمات ایسا کلماتی که در دست ماست از اینمون به دست ما رسیده از کلمات ایسا احتمالاً بلکیت مطمئنن مسیحی کلمات رو در دست ندارن کلمات ایسا خیلی جالبه برای دو مطلب برای دو طایفه یکی برای علماء خیلی کلمات جالبی داره ایسا و یکم راجع به دنیا و تحذیر از دنیا و مذمت از دنیا و خیلی جالب مطالبی داره زمان عابدین سلام الله علیه می اخوانی اوسی کن به دار ولا اوسی کن به دار من شما رو به آخرت توصیه میکنم به دنیا توصیه نمی کنم زیرا خودتون دنبال دنیا دارین میرین آیا نشمیده که عیسی علیه السلام فرمود، به این که من یبنی دارن علا موج البحر میدی که عیسی گفت کی موج بحر خونه میسازه نکومت دنیا این دنیاست که هر آنشی رنگه فجع فاعبروها ولا تعمروها این رو معبر قرار بدید این روز میشود پول قرار بدید اینجا که جای آباد کردن نیست زندگی این سلام الله علیه کلام عیسا تمسک میکنه ببینم خود روایتون نشتم براتون بخونم عرض میشود به این که بله ای اوسی کن به دار الاخره ولا اوسی کن به دار دنیا فنکم علیها حریسون خودتون دنبال دنیا هستین و به ها متمسکون اما بلغکم و ان عیسی علی السلام قال للحواریون اد الدنيا قنطره فعبروها ولا تعمروها ها نشون دید که عیسی گفته دنیا پل و پل رو انسان از روش عبور میکنه روی پل که خانه نمیسازه که و ایكم يبنون على موج البهر دارا کدام که تو روی موج دریا یا خونه ساختین <تصفح> تلکمت دنیا فلاتت تخزوها قرارا دنیا که جای استقرار و نیست روی جایی که تغییر تبدیل میکنه اینال آخرته یا دارالقرار استقرار شما اینجاست؟ خب والا امیان داره مسئل میزنه میگه کسی که دنیا رو شناخته فهمیده دنیا فقط به عنوان یک وسیله است برای رسیدن به کمالات معنوی اگر این به مقداری از دنیا استفاده میکنه که او رو نزدیک کند به خدا نزدیک کند به بهشت نزدیک کند به کمالات معنوی لذاست که از این منزل رو ها میفته اول آن مرگش اول سعادت و راحت او اون وقت هرچی سختی تو یادیده سخت براش. توی روایتی اولین توفه مؤمن اولین توفه مؤمن اینه که همین که مرود ملائک میگن قدم تقدوم من خیر مقدم خوش آمدید قرب غفرانو هلکه اول مشیعیک خدا تو همه تشکیل کنندگانش رو برای تشکیل کنندگان تو رو به خاطر تو آمروزید آیه تو استغفار کرد دعای همه رو پذیرفت و هر کی در باره تو شهادت داد شهادت همه رو پذیرفت همه اومدن گفتن اللهم مننا لانه علم و خیره و آن اولش و برای اولین تخفهیمون نمیده ملاکه بیان بیان قدمت تا خیر مقدم خوش آمدی و برای خاطر تو مشبیعی به تو رو هر که یه دوی تو رو وقت این زحمت کشیدی تو تو یه زحمت داشته برایش اما ما نرونیم یعنیم به اینکه که ترک و شدید و عشق ببین ترک و نه گناه رو ترک کردن سخته ولی سختتر از ترک گناه ترک بهشته ولی بهشت در دست میدیم و عویزار گفتن چرا چنون از مرینی می‌ترسیم؟ فرمود شما خانه دنیاتون آباد کردید و خانه آخرت رو خراب کردید کی که از منزل خراب از منزل آباد میخواد بره منزل خراب و با میل رغبت میخواد بره گفتن ورود ورود به پیشگاه خدای تعالی چگون نخواهد بود چجوری وارد میشه این دنیا فرمود برای بنده مؤمن مثل کسی که سفر رفته حالا وارد میشه به قموخشاش به دوستانش و وضع ای, ای که بنده گناهکار مانند عبد فراری که فرار کرده و حالا میگیرم یه رنطل گف با ما چگونه معامله میکنند، گفت ارزه کن خود رو به کتاب خدا ان الْعَبْرَالَ لَفِي و وَاِنَّ الفجار لفی جَهِينَ گفت پس رحمت خدا چگونه است؟ گفت ان رحمت الله قریب من المحسنیم منابراین امیر المومی فرماک بیان چجوری از این دنیا میخواد برداشت کنی؟ مثل یه قوم مسافری که منزلشون سخت را می برن یه منزل آبادی؟ یا نه, نه مثل یه کسی که توی منزل آبادی هستن میخوان برن یه منزل خرابی؟ تمام فعالیت ها، تمام کوشش ها، یعنی هم لم يكن شيء تمام شو ما اعمل من اعمال فجعل النو منصورا شو ما رنش تداد به هر حف یوم آصف لا یق برین معشی مما كسبوا و ودم مک آدم بعدا تمام زحمت تمام کوشش تمام رنج هاشون مثل خاکستری که باد سخت بوزد هر میبر چی ندارد به ارس و اون آقام که ارز کردم اولین تحفه مؤمن اینست که بهش میگن تو قدم تا خیرم نبودم غفر الله لمن شیعک بنابراین فکرش رو بکن میخواد چکار کنی از این منزل میکن این منزل دیگه این منزل دیگه میخوای بریم این حدیثام هم جمله بخونم از معجل بلاغه و دیگه رفع زحمت کنیم از شوید امی و ممنونی سلام الله علمی ورماید آملون فی الدنیا لدنیا کسانی که تو دنیا کار میکنن دو دسته هستن یه دسته فقط برای دنیا کار میکنن قد شغله و دنیا و ان اخرته دنیا رو مشغول کرده از آخرت ابدا فکر آخرت نیست قد شغله و دنیا و ان اخرته یخاف الون من يخلفه الفقر بچه‌هاش میدرسه فقیر بشن داره خود خودشو میکشه فعالیت میکنه نکنه اونا فقیر بشن ولی فکر فقر خودش نیست یفنی عمره فی منفعت غیره تمام عمرش رو برای دیگران داره مصرف میکنه این دسته هستن و آملان فی حال ما بعدها یه دسته هم هستن این دنیا کار میکنن زحمت میکشن ولی مقصد و هدفشون اون دنیاست هر دوشون دارن کار میکنن هر دوشون دارن فعالیت میکنن ولی هدفها مختلفه لا آملان في حال ما بعدها تمام همش است که مرزی خدای تعالی چیست اون راه رو طی کنه فا احراز الحزن دنیاشم به خودش گیرش میاد آخراتشم سر خودش محفوظه یه جوابی که خیلی زیر چابک و فعال و زرنگ بود داشت می دوید گسپندرم داشت می سر کوبی یک کسی از اصحاب به رسول الله عرض کرد یا رسول الله این کاش که شاید این قوت و قدرت و توانایی ای در راه خدا بود در میدان جنگ بود رسول الله سوالی فعاله این شبیه به این مطلب که اگر قدرت و فعالیت ای و کوشش ای برای بدست آوردن مالی برای حفظ جان خودش و جان زن و بچهش ای در راه خداست ای دنیا حساب نکن اگر فعالیت و کوشش ای برای بدست دست آوردن است برای رسیدگی به همسایه و ارحام ای در راه خداست ای در راه دنیا حساب نکن و اگر در راه نمینم چی چیه رسیدگی کردن به کیه به احسان به فقراست، ای در راه خداست و اگر فعالیتش برای تکاسور و برای طلب دنیا و برای افتخار و تکاسور است ای در طلب دنیاست بنابراین حال اون کسی که دنبال پولم میره نه معناش است که دنبال کار نرو دنبال پول نرو دنبال مقام نرو ولی رفتن به چه مقصد است رفتن به چه مقصد است اون کسی که طالب دنیاست برای آخرت اول مرگ اول راحت اوس از منزل سختی بیرون اومده اول راحت او اونجا صلی الله علیه محمد و عالم محمد و, و عجل و فرجه. این روایات رو برای شما دارد از این شود که اون روایت اول راجع به اول امر روایت اول امر در صفحه دیست جلد 7 بهار قدیم جلد 7 بهار قدیم اون روایت خوشام که چهار تا صفت بود و دو تا شما خوندیم دو تا دیگشو نخوندین اون در صفحه 126 یا 226 شاید 226 جلده 7 جلد هفت هم اندهار قدیم بعد عرض می شود به که اول مایو یبشر رو به المؤمن ان قدیم تا خیر مقدم صفحه 119 جلد یک مستدرنگ انما مثل الدنیا که ماهل به سد پنج جلد یک صفینه که مثل رجل الله و زراتان صفحه 122 جلد 73 بهار جدید این دنیا که شبکه 262 غرار غرار غرار الحکم این دنیا شغل من الاسواق البته این تو بهار هست ولی بنده از کتاب روزه المتقین صفحه 183 جلد 13 روزه المتقین که شرح ملای احزر الفقیه از رو نوشتم ولی تو بهارم هست جلد 13 روزه المتقین صفحه 183 اخوانی اوسی کن بالاخره ولا اوسی کن بالدنیا این صفحه سد هفت جلد هفتاد به ها تارک زنده از ذهنم گفتم جاشو نمیدونم کجاست عبیزر در صفحه بله سد جلد شیش بهار جدید سد و سی و هفت جلد شیش بهار جدید آمنون فی الدنیا نعجل بلاغ است ارز می شود صفحه هزار و دویست و شیش صلی اللہ علیه محمد. آل محمد و عجلی فراد